دوست میکنم که امروز صدام بدجوری گرفته ولی خب سعی کردم این مصاحبه رو با کیفیت خوب براتون بگیرم مصاحبه نسبتا خوبی شده یک فضای از یک فضای علمی خوبی برخوردار این مصاحبه و بیشتر از این نمیگم ازش خودتون گوش بدید و تشکر میکنم از محمد دیوکو عزیز به خاطر تنظیم برنامه و مطروک آرت ورک برای زمانیتی که برای کارهای گرافیکی ما و همه عزیزانی که توی جمع بری این قسمت به ما کمک کردن مهمان این برنامه پویار خب سلام پویار جان امروز مهمون برنامه مایی این درواقع امشب مهمون برنامه مایی در اختیار شماست گفتگوی پاپی من خدمت خودت و هر کسی که در این صدا رو میشنوه سلام میکنم مرسی که من قابل گنستی برای مصاحبه و یک گپ و گفت کوتاهی که با هم داشته باشیم من در خدمتت هم. درست. پویار جان خودتو برام معرفی کن بگو چند سالته درس میکنی چه ای و یه بیوگرافی نسبی از خودت بده که بتونیم یه بیوگرافی نسبی دارد. بخوام از خودم بدم من متولد دوازده دوازده 70 خب پویا اسممه پویار لقبم عرض به خدماتت که نه تا دیپلم درس خوندم در حال حاضر مشغول کارم و این اینکه همین نمی بیوگرافی فکر کنم کوچیکی بود که گرافی ام... باشه ام... یکی از تکنیفی ترین آ... آرتستای رپ فارسی و کسی که کاراتو گوش بده کاملا متوجه این امر میشه بله ام... خودت معتقدی ام... که مخ... متخصصی توی قافیه بازی و قافیه ها توی کارات قشنگ به چشم میاد و به جور خارقل عاده آل... ایه ام... این طرف میگید بگید داری یعنی توی هیچ رشته مربوط به ادبیات نبودی این از کجا نشأت میگیره این قافیه ها اینقدر ردیف و پشت سر هم این خب در وحله اول تمرین و تکرار مکررات، یه سری اتفاقات روزانه، یه سری اتفاقات در لحظه رو توی ذهن ثبت کردن و حالا بعدن بهش پرداختن و سیقلش دادن این رو باعث میشه برای اینکه حالا اینکه من دیپلم دارم و حالا یه سری حرف رو زده میشه به عقیده خود من مدرک تحصیلی زیاد ملاک نیست که حالا میزنه درک و فهم طرف مقابل تا چه اندازه است از نظر تکنیک و اصول که خوب لطف داری به من و اینکه من زمانی که بخوام استارت شعر رو بزنم حالا معمولا که از قبل موضوعش طرحی میشه و خیلی راجع این قضیه من سخت گیرم که حالا اون موضوع چی باشه و خب بعد از قسمت موضوع میپردازم پردازم به این که بخوام تسبندی کنم اصلا از کجا باید شروع کنم بعد به کجا برم و در آخر کجا تموم کنم و یکی از چیزایی که خیلی خودم مد نظرمه تو کارام اینه که چجوری کار شروع بشه یعنی درست. چیزی که در وهله اول شنونده و بیننده رو جذب میکنه شروع گیرای یک اثر. این اثر میتونه اکس باشه میتونه آهنگ باشه میتونه ویدیو باشه فیلم باشه یا حتی کتاب باشه که شروعش خیلی مهمه که خب هم انتهای مطلب رو گفته باشی همین که همچنان در ابتدا باشی و کم کم با شنونده ارتباط برقرار کنی و این اجازه رو به شنونده بدی که بخواد از حرفت از اون چیزی که داری میگی اون برداشتی رو که باید بکنه درسته اینم از این بابت ببین چون الان شنوانده اکثرا فکر میکنن که خب کسی که داره شعر میبیسه نمیدونم باید از جه خاصی الهام بگیره و هزار تا کتاب بخونه و نمیدونم بحث هایی میکنن ولی خب تو میگی که این بیشتر نشأت میگیره از اون درکی که از کارت داری درکی, درکی که از موضوع داری رجب این پارامتر میتونی برام صحبت کنی که حتما نیازه که آدم باید بشین کتاب خاصی رو بخونه خونه دونم الهام بگیره فلان بره طبیعت و از اینجور حرفا ببین این نیاز نیست پس درسته؟ نه نه هیچ صرفا نیاز نیست که حالا میزان تحصیلات داخل باشه توی این قضیه خیلی چیزا ذاتیه خیلی چیزا اکتسابیه و به درک من و شما وستگی داره از موضوع و حالا شاید من خیلی از کلمات به سلومبی بیام استفاده کنم برای به تصویر کشیدن یه درخت شما خیلی راحت تر و با کلماتی خیلی سلیستر و راحت تر بیای این درخت رو به تصویر بکشی و شنونده خیلی قشنگتر جذب کلام شما بشه این صرفا محدود به مدرک تحصیلیات میزان سواد نیست ولی خب استفاده کردن از یک سری کلمات یک سری جملات، یک سری ضرب المثل ها، یک سری تکنیک, ها، تکنیک های ادبی چرا منوط به متلاحه است منوط به خوندن کتاب حالا تا حدودی داشتن تحصیله ولی خب یه سری سیز هم هست تو ذات هر آدمی هست و بقیده من باید پیداش کنه صبر نکنه که خودش رشد کنه و بگرده دنبال اینکه که پیداش کنه ببین از این بحث شعر خارج بشیم چون کامل برامون توضیح دادی و این جای حرفی نمیمونه وارد مبحث تکنیکت میشیم یک تکنیک خاصی داری هم تو فلو هم تو خوندن تو رایمت و خیلی چیزهای دیگه خیلی خوب روی بیت سوار میشی این از کجا نشأت میگیره این از کجا میاد که انقدر خوب میتونی کارتو اداره کنی و با یک کیفیت خوب بهتون کارت رو جمع کنی یکی چیزهایی که تو موزیک خودم یعنی حالا کاره که خودم انجام میدم خیلی دخیله اینه که اون موزیک رو هم خودم میسازم هم. این ارتباط خیلی مهمیه که بین موزیک و اون کلامی که من میگم برقرار میشه خب خودم میسازمش و حالا بعد از ساختنش اگر باشه روش موزیکی اجرا کنم بیت به بیت و در واقع شاید مسره به مسره هر مسرهی که گفته میشه باید از نظر فلو باید از نظر استایل اون چیزی بشه که مد نظره و اگر بشینه روی بیت باید بشینه حالا خیلی خوب تکنیک های زیادی هست که باید مد نظر قرار بگیره مد نظرم قرار بگیره اینکه چه حرفی کجا کشیده بشه؟ چه حرفی کجا کوتاه گفته بشه؟ چه حرفی از روش پریده بشه و خب این چیزا تکرار مکرراته یعنی فقط تمرینه فقط تمرین فقط یه حنسفیری توی گوشته و تمرین برقده من یعنی اینکه شما آهنگ یه حالا موزیسین دیگه یا رپر دیگه یا آهنگساز دیگه رو گوش کنی برای اینکه بخواد یه چیز دستت بیاد شاید دخیل باشه ولی در آخر باید اون محصول نهایی رو خودت تولید کنی و این فقط و فقط در گروه اینه که تمرین داشته باشی اینکه بدونی چی میخوای و وقتی دونستی چی میخوای بدونی باید چیجوری جوری پیادش کنی درسته ببین اصولا سبک خاصتر از باقی رپرها ها و آرتیست های ایرانه مجموع اخیره تو زیرش نوشته بودی سبک دیپ هاپ بله دیپ هاپ چیه و چجوری درستش کرد چون خیلی خواسته ببین کنار کارهای دیگه میذاری شاید مثلا نش مساجره توی رپ ایران پیدا کرد حالا سوا از رپ خارج از مرزا ایران این از کجا؟ یعنی دیپ هاپ چیه برای اون توضیح بده دیپ هاپ،, دیپ هاپ خب دیپ به معنی امیق هاپ هم که خب حالا بخشی از هیپ هاپ و رپ امیق یعنی جوری که ما میانیم موزیک رو پس زمینه قرار میدیم کلام رو قرار میگیره و حالا بعد از این مجموعه مجموعه های بعدی سبگ و سیاق بیشتر سعی میکنم جا بیفته که حالا به چه صورته یعنی اصلا شاید درام کلمات بنده باشه و حرف اون درامی باشه که روی موزیک ساخته میشه یعنی چیدمانها عوض میشه ولی در این حال که همه چی سر جاشه همه چی به گوش میرسه رپ عمیق هم که خب ما حالا استارت اولش رو زدیم بیشتر باید به انسانیت بپردازه باید به مسائلی بپردازه که تأثیری تو تک تک های جامعه، های سنی، قده های سنی داشته باشه. اینکه رپ عمیق به دور از هر نوع حالا حواشی چجوری بگم حواشی که اصلا نباید باشه، یعنی جملات غیر ضروریه، به دور از هر نوع تجمل به دور به از یه خاصی داره. یعنی اون روال خودش رو پیش میره و هیچ چیزی نمیره. تو هیچ خارج از اون نه نه نه. یه سری رو دقیقاً، دقیقاً همینه. علاوه بر اینکه رپر خوبی هستی، یک آهنگساز خوبی هستی و کار آهنگسازی طرفدار خودش خودشو داره. و خیلی یا خیلی از رسانه ها، خیلی از فعالان و منتقدان رپ فارسی خیلی دوست دارن آهنگسازی تو استعدادی که توی آهنگسازی داری نوبویی که توی کار آهنگسازی داری ما قبلن مهمون آهنگساز داشتیم برنامه قبلی محمد دیاکو عزیز از آهنگسازوی خوب مهمون برنامه بود و رجب این مسئله صحبت کردیم اما میخوام تو یکم تکمیل تر برامون توضیح بدی چون سابقت فکر کنه یکم باید بیشتر باشه برامون توضیح بده که چه جوری میتونی میتونیم یک آهنگساز خوب در کنار یک رپر خوب باشی اولا که لطف دارید دوم اینکه شاید اینو من توضیح بدم یه مقدار هضمش سخت‌تر باشه ولی خب منی که دارم آهنگسازی میکنم از نوت موسیقی هیچی نمیدونم ابزار و عادت موسیقی رو ندارم یعنی منم یه کامپیوتر همین و بس یعنی شاید من بخوام بگم که امسال من حالا از من بزرگ از من کوچیک‌تر از من بزرگتر بخوان این کار رو شروع کنن چه جوری باید شروع کنن واقعا نمیدونم چون اصلا فرمی که من شروع کردم و استارت زدم یه یعنی مقدار انورماله یه یعنی مقدار عادی نیست یعنی من حالا رو حساب علاقی که از بچگی داشتم بعد از اولین آهنگی که حالا محمد تیدی رحمتش رو کشید ساخت احساس کردم اون چیزی که میخوام رو خودم باید بسازم یعنی هر چقدر هم که یه اثر زیبا باشه در آخر اون رو هم من باید بسازم و خب همین باعث شد حالا برنامه اصولا اثر گذاری روی یک اثری که مال خودت نباشه یکم سختر روی اثر بخشیدم به یک اثری که مال خودته یعنی یک آهنگ که خودت درست میکنی خب طبیعتا اون اثری اون چیزی که به مخاطب نشون میده اون حسی که به مخاطب میده طبیعتا اون کار نداره که شما با یک, با یک آنگسازه دیگه جمع میکنی و شاید این یکی از نقاط قوت کار شماست بله. ولی خوب گفتی که بدون آشنایی با ساز خاصی شروع کردی با آنگسازی من همین الانش که دارم با شما صحبت میکنم 13 سال 14 سال که دارم کار میکنم نوت موسیقی رو بلد نیستم من خیلی هم با من صحبت کردن وقتی فهمیدن که حالا به من گفتن فلان آلبوم فلان ترک و شما زدی گفتم بله گفت تحصیلاتتون گفتم خب دیپلم عمران گفت سطح موسیقی گفتم هیچی خودم کامپیوتر حتی دیگه اصلا جوابم نداد حتی دیگه اصلا به صحبت ادامه نداد احساس کرد حالا من دارم ایشونو مسخره میکنم احساس کرد دارم نمی‌دونم فکر دارم دروغ میگم یعنی حالا اثر کسی دیگه یاد هر چیز دیگه باورش نمیشد خیلی حالا موارد زیادی بودن که برخوردم بهشون ولی خب میگم صرفا علاقه باعث میشه که تو در آخر اون چیزی رو که خودت میخوای رو خلق کنی فرقی نمیکنه حالا تو زمینه موسیقی باشه تو زمینه هر کاری هر شغلی هر حرفی که لازمه اصلیش عشق برقیده ای من عشقه به اون کار، علاقه به اون کار و اینکه تو ذاتت باشه و دوستش داشته باشی. یکم احساس میکنم کنم گفتگونه کم سخت شده و بطرقی کم چیز سر صحبت کنیم، خودمونی تر صحبت کنیم. ببین میخوام بدونم هیچ وقت مشکلی نداشتی با وجود اینکه آثار خوبی رو منتشر کردی، آثار استاندارد و برنام ریزی شده و فکر شده منتشر کردی وقت با بازدهی که میگرفتی مشکل نداشتی از دیده اطرافیان چرا خیلی ها میگفتن خب اون جایی که جایگاهی که باید باشی نیستی ولی خب همین ببین مشخص این همه کارای خوب ولی خب با این وضعیت شاید خودمم واقعا دلیلش رو نمیدونم ولی همین تعداد اندکی هم که حالا دورادور جویای احوال هستن پیام میدن ایمیل میزنن جویای هن که ببینن حالا بعد از این هم مدت باز کار قراره بدیم قراره بدیم ندیم این برای من کافیه و سعی میکنم که به تعدادشون اضافه کنم یعنی ولی خب در از هیچ وقت در دربنده, مخا... دربنده طرفدار و محبوب شدن اینا نبودی بیشتر نبودم نه نبودم, نبودم. نبودم. نبودم. نه و الان خود گفتی 14 سال داره فعالیت میکنی و خیلی ها شاید پویا رو با ترکی تو آلبوم سمفونی گربه ها بود چناختن بله چجوری اون همکاری صورت گرفت و چجوری شد که شما اصلا رفتی داخل اون آلبوم من برای اون توضیح بده چون اون آلبومی که از آلبومهای محبوب رپ فارسی شد و خیلی از آرتست که تو آلبوم بودن به جاهای خوبی رسیدن و برام توضیح بده اون آلبوم اصلا نهوه شکل از اولش خیلی جالب بود یعنی من آهنگ حرف دل اگه اشتغانه کنم پخ شد برست ما اطریق یکی از دوستان مرتاد کلهوری آشن شدیم ایشون برنامه ای چی ترمید دیدیم و گفتش که یه همچین آلبومی و این نفرات داخلش شد اتا هم میخوام باشی منم فکر میکنم هنوز چهلوم پدرم نشده بود که گفتم هستم مشکل نداره پدرم بیت ساخت برام فرستادن، شعرش رو نوشتم و شاید فکر کنم بعد سه سال من رفتم پشت میکروفون، اون ترک زبط شد و حالا ما هم شدم چیزی که گوشتگیم آره، بیکن راجب موضوعش برام توزی بده وسیعتنا، خیلی ساده و خودمونی صحبت کردم و سعی کردم جوری باشه که هیچ جای علامت سوالی باقی نمونه همه‌چی طبیعی بود. یه دید کلی بهمون بده که کس که شاید مثلا اون کار ناشدی بده شه، بدون که موضوع اون کار چی مده. من خب تقویم روال کارهای گذشته بر اون آهنگ همچنان گلایه کردم از وضعیت بده حالا دور که شامل دوست میشه، شامل یکی میشه، شامل دوست دوست میشه، مادر دوست میشه. و مشکلاتی که باهشون دست و پنجه نرم می‌کنن و و این که دیگه با این کلمات و با این افعال بخوام وسیعت رو تنظیم بکنم و در آخر کل دارایی ها محدود بشه به یه آرشی کامل موسیقی و یه ماهی تو عکسای پدرم بیشتر باز هم نسبت به کارهای قبلی خودم هم جمعه اعتراضی هستم آره ها خب اون جمعه اعتراضی شد راقلا واضحه توی تا مجموعهای خوبی پخش کردیه مجموعه های خوبی پخش کردیه چهار تا مجموعه به هم گفتی پخش کردی، سه تا، یکیش بدونی کلام بود بله و اونی که آخر مجموعه بود، یعنی همین پویای امیغ را گشته با نکنم پویای امیغ گفتی ترجمه شده بله ست ترک داشت، یکی ترک داینامیک، یکی ترک وسطی جواد همیز، هم ترک باید برام توضیح بده. این مجموعه خط فکری چجوری بود؟ و خیلی ترک های چرا علاقه داری کولن ترک های طولانی پخش از خودت؟ این ترک های طولانی یه فلسف... یکی از منتایم فلسفه‌اش اینه که خب اولا آلبوم ای پیئه. یعنی ترک یکی کلاً سه دقیقه است، ترک 2 4 دقیقه است، ترک 3 با اینکه خب 3 چهار دقیقه است. تو پنج دقیقهش خونده میشه ما بقیش فقط موزیک بی کلام رو ما خب چیزی که من دوست دارم و دوست دارم فیدبکش رو ببینم اینه که خب شنونده با موزیک هم ارتباط برقرار کنه موزیک رو هم بشنوه همش نیاز, نیاز نیست که کلام من رو بشنبه یه جایی هم باید سکوت بنده رو بشنبه و خب از این به بعد همین روی ادامه داره شاید یا آلبومی باشه که پنج ترک باشه تو یه دونهش فقط خونده،, خونده شده باشه اون یه دونه هفت دقیقه باشه خوندنش و اندازه ی آلبوم ایپی بقیهش موزیک بیکلام باشه الان بیشترین حرفا به نظر من تو سکوت نه است و در آخر خیلی باید به خودمون سخت گیر باشیم اگه قرار اثری رو تولید کنیم اگه قرار اثری رو به گوش شنونده برسونیم خیلی باید به خودمون سخت گیر باشیم که خروجی خوبی تحویل بگیریم و بتونیم شنونده رو ارضا کنیم از بابت کلامی که به گوشش میرسونیم و آهنگی که به گوشش میرسونیم خط فکری آلبومی که گفتی از اول تا آخرش با همون ترک یک مشخص میشه خب یه روزای ملزم به این که همرنگ یه جماعتی بشه که نوید بشه یه روزای همرنگ دماهتی که باید بشه و میشه و روزهای نابسامانی که خب همچنان ادامه داره و هنوز به اون صحباتی که باید نرسیده و این مسلزه میامد دار زمانه تا شاید خط فکری آلبوم بعدی مشخص کنه که اون آلبوم قبل به کجا رسید و این عمق پویا قرار ماحسلش چی بشه یه یو آلبوم تولانی دیگه داشتی، یعنی سه تا به هم بگو اسمشم بگو و برچسب برام توضیح بده. آلبوم تولانی دیگه اولین آلبوم من بود، آلبوم سوال. اگه منظور شما باشه. درسته. آلبوم سوال بود که 88 محدود به چند ساله پیشه؟ هفت. سال پیشه؟ 88 سال 87. آره خیلی قدیمیه. خیلی قدیمیه آره. همش تو استدیو تی دی به سه چهار تاش که استدییو دیجی اندیش ضبط شد و به یه دوش همه رو باز موزیکاشو خودم زدم. خیلی اون آلبوم هم برام ارزشمنده چون بابت اونم من خیلی خیلی دوندگی ها خیلی سخته تحمل کردم که اون آلبوم هم ضبط شد به دوره خودش. و از اینجا به بعد کمتر طولانی می‌سازیم، کوتاه می‌سازیم ولی خب سعی می‌کنیم که تأثیرگذار واقع بشه. آلبوم جدید، پروژه آلبوم برام توضیح بد آلبوم دومت که فکر می‌کنم یکم از طرف من آلبوم دومی که ما کار کردیم با انسان فعلی و رحی سابق که <م> یه آلبوم ایپی سه ترکه بود این آلبوم کلن توی شرکتی که ما با هم دیگه کار میکردیم شکل گرفت یعنی توی اروپ که تایم استراحت داشتیم صحبت میکردیم چیکار کنیم این درسته اون غلطه رزا اوکیه پوی اوکیه کردیم و فکر میکنیم چار پنج ماهی هی hey, ما توی این اروپا با, با هم نگه رفتیم اومدیم تا شرارو مچ کردیم و محسله شد اون آلبوم ازیون آلبوم بعدی که آلبوم اویکنینگز باشه یا آلبوم کاملا انسرومنتال انسرومنتال درسته که باب یه سری اتفاقات تازه رو برای من باز کرد حالا وارد شدن به دنیای امبیئنت الکترونیک و سبکی که خب من الان دارم سعی میکنم تلفیقش کنم با رپ که میشه دیپ هاپ امیدوارم بتونم یعنی پسش بر بیام و آلبوم بعدی احتمال زیاد آلبومی اینسترومنتال دوباره یا آلبوم ساترک اینسترومنتال و الان میتونی بهمون بگی کی منتشر میشه این آلبوم یا سر درصد روز, روز تولدم 12 اسفند یا آلبوم یا سینگل ترک میدم این 12 اسفند پویار کار متشه این 100 صد درصد اصلا غیر ممکنه که نشه و 22 اسفند هم باز نمیتونم بگم دقیقا آلبوم یا سینگل ترک ولی خب 12 و 22 اسفند سعی میکنی که کار بدی 100 درصد ببین پاسور برمیگردیم سر همون محفظ اجتماعی کارت تو الان اصلا بزرگی رو داری میری و اصلا بزرگی هم بوده که من دیدم تو کارت باشون همکاری کردی مثل فرشاد و خودتم که الان گفتی دیجی اندیش و محمدی تیدهی برام من سخته ببین نمیتونه تو نمی نمیگنجه که چرا چرا پویار انقدر حرفی و بعد مخاطبین ما بیرن یک افراد دنبال میکنه که حتی اصلا ارزش هیچی نداره راجع به ببین راجب این وضعیت برامون توضیح بده راجب مثلا ببین راجب این مخاطب برامون توضیح بده گله ای داری؟ مم. گله هیچ وقت نمیتونم بگم گله ولی خب مشکل اصلی که حالا ما با دست و پنجه نرم میکنیم اینه که اثری که با اش فکر میشه با اش ماه ها روز ها زحمت کشیده میشه خیلی خیلی کمتر شنیده میشه تا اثری که شاید یه نفر پشت ماشینش دو اتاقش یه ادایی در میاره یه حرفی رو میزنه که اصلا هیچ پایه و اساسی نداره اصلا نباید اون حرف زده بشه شب تو فضای مجازی پخش میشه و صبح میبینید همه گیر شده این یه چیزی که حالا حالا فکر میکنم قرار نیست از بین بره یعنی هر چی اثری تولید میشه که راجبش فکر میشه کمتر دیده میشه تا اثری که خیلی اصلا اثر نیست یعنی اپیدمیه دیگه اپیدمیه در واقع و این وظیفه حالا من و امسال منه که اینو جواب اندازن که خب مردم اینو بیشتر بخوان فکر کنن بخوان واقعی تر باشن یعنی کمتر بخوان با چیزایی که نیست الا خوشحال باشن بخوام بخندن چیزایی که اصلا نباید باشه ببین تو بقیه مصاحبه ها اصولاً اون شخصی که داره مصاحبه میکنه یه سری اسم میگه و میخواد از مخاطبش که یعنی اون کسی که داره باش صحبت میکنه میخواد که نظرش نظرشو راجعون اسامی بده ولی من دوست دارم تو راجع هم کسایی که باشون همکاری کردی مثل فرشاد محمد تیدی دیجی اندیش و خیلی خیلی های دیگه که خود بهتر از من می میخوام راجب هر کدومشون نظرت رو و اون تجربه که تو همکاری باهاشون داشتی رو برامون بگی من اولین تجربه که داشتم با همون تیدهی بود که واسه آلبامش با هم یه ترک ضبط کردیم محمد رو از نظر کاری خیلی قبولش دارم از نظر موسیقی خیلی قبولش دارم و شخصیت محترمیه دیژه اندیش سر ترکه همینجوری من استدیو بودم کروسی کار ایران بود می‌خوام از طرفم. دیجی اندیش تو ایران کار میکنه دیجی اندیش کار نمی‌کنه نیست تو ایران. والا خیلی وقت ازش خبر ندارم ولی خب زمانی که ازش خبر داشتم آه تو ایران باش کار کنه. تو ایران بود بله. تهران هم بود. م. من هر زبتی که کار رفتم پیشش درکه که همینجوری بود. خوندم رسید به کراسش. کراس هم خودم خوندم و خودم اونجوری که می‌خواستم نشد. اومدم بیرون گوش بدم دوباره برم تو گفت میشه کوراس من بخونم بودم با کمال مل خوب میشناختم از قبل رفت و همسرشون زحمت رکورد رو کشید کورس رو خوند دراخرش برام ستار هم زد که چه ستاری زد همیشه از اون کار من به نیکی یاد میکنم چون خیلی برام خوشه دیگه بعد از استدیو دیجی اندیش من چار پنج تا از کار ها سه تا از کار ها گشته با نکنم با لیبل اومد با همکاری که حالا با بابک داشتیم نه همکاری ترکی صحبت کردیم بنده به عضویت این گروه در آمدن ولی خب دیگه بعد از این مقوله این موضوع زیاد دوون نه ورد و حالا بنا به دلایلی این گروه هم دیگه کار نکرد و همین همکاری با فرشادم که حالا یکی تو آلبوم وسیعت نامه بود و زحمت ترک میکس یکی از کارای ما رو کشید آه... فکر کنم میکنم خسته ای آه... چون الان دیر وقت داریم صحبت میکنیم ساعت نزدیک دوازده و به دیگه نمیخوام زیاد طولت میش کنم اگر حرفی داری بهمون بگو که ما هم در جریانش باشیم و مخاطبمونم ازش چیزی یاد بگیرم من خیلی کوچیک تر از اینم که بخوام عرضی داشته باشم ولی برای همه برای شما و برای تک کسایی که حالا صدای بنده رو میشنون روزای خوبی رو میخوام آرزوم لبخند رو لبشون و تنها چیزی که میتونم به کسایی که میخوان کار کنن دارن کار میکنن بگم اینه که این مدار سخت باشیم به خودمون این باعث میشه که محصول نهایی یه چیز استاندارد عذاب در بیاد و این خیلی قشنگ کرد روسته ببین ما توی قسمت های مختلف برنامهمون از اون کسی که مهمونه مونه یه چیزی رو به عنوان یادگاری بده به برنامه ما حالا ما رب، مهمون رپر داشتیم که برامون اجرا زنده free برامون فرستادم فرستادن آهنگ ساز داشتیم به اون موسیقی هدیه داده بیت باکسر داشتیم برامون اجرا کرده میخوام ببینم اگه دوست اگه علاقه داری اگه دوست داری تو این بخش برنامه باشی چیکار می‌خوای بکنیم منم از طرف خودم چیزی که ازم بر میاد یه موسیقی که تقدیم می‌کنم خیلیامو خیلی زنده بیشتر از این وقتی نمیگیرم و ممنون که قبول کردی توی برنامه باشی ممنون از شما توی شرایط سختی این برنامه ضبط شد و میدونم که خسته بودی و همین که مجاکر که قبول کردی زنده باشی دست درد نکنه لطف کردی از شما هرکی که صده منشنی تشکر میکنم براتون رضوی سلامتی و خوشبختی دارم ما هم تزد تشکر میکنیم و همچنین برات آرزو می‌کنیم که همیشه توی کارت موفق باشی سلامت بشی همیشه شاد و خوش باشی خrandnبشی خدافظ این ساعت وقت خودت رو رو و این مساحبه رو با دقت گوش کردید ماندوارم که خوشتون آمده باشه ترکی که همکنون دارید زیر صدیم من میشنگید بوده که خیار عزی به ما داده و ما در اینترو قرارش دادیم و سعی میکنیم هم اکثر تا فردا به صورت ترک در یک ویژه برای شما برای دانلود قرار بدیم منتظر هم بعدی متایی بدی گفتگوی هیپپی باشید نظرتون رو تا به اینجا در صفحه اینستاگرام ما به ایده هیپپی انترویو به گوش تا بتونید برنامه خودتون رو بهتر از شکلی که هست درست کنید و به گوش شما عزیزان برسونید باز هم تشکر میکنم از همه عزیزانی که در پخش این قسمت به ما کمک کردن همه رسانه ها که به صورت خودجوش کارها رو شیر میکنن و از ما حمایت میکنن و همچنین شما عزیزانی که از ما حمایت میکنید کارها رو شیر میکنید برای دوستانتون میفرستید تشکر ویژه میکنم و همین در قسمت بعدی برنامه خدا نگه دارشون